فصل هفتم هم بیشعور تجاری دلی بزرگ دارم آنقدر که همه ی اسکناس هاگ دنیا در جا می شوند. برنارد گروفشتین یک بیشعور تحت درمان صنعت، بازرگانی و تجارت رشته هایی یعنی هن که بیشعور زیادی جذبشون می شن دلیلش هم ساده است بیشعور ها پول، قدرت و رقابت برتری طلبی در تجارت با عشق بیشعور به پول مرتبطه. مدیریت ابزاری میشه در دست یک بیشور تا از قدرت و امکانات سوء استفاده کنه و رقابت محمل ایدئالی میشه برای ویرانگری که جزء جدا نشدنی بیشوریه. در واقع تاریخ تجارت مملو از بیشعور در های فرائنگ مصر تومارهای پاپیروسی وجود داره که عناوینی چون موفقیت به نسل کشی و بیشعور یک دقیقهی بر اونا دیده میشه. در متن باستانی دیگری به نام نکات مدیریتی چنگیز خان چهار مرحله برای رسیدن به مقامی که ایلخان بیشعوران نامیده شده برشمردند یک تمام رقیبان را از میان بردار دو همه قدرت را از آن خود کن. سه، نیگت واقعی خود را با حساری از دروغ و نیرنگ از دیگران پنهان دار. چهار، چنان عمل کن که کسی جز خودت سر از کارت در نیاورد. همچنین نمی از تأثیرات معاصر بیشعورهاگ پولکی چشم بادمی بر فرهنگ تجارت غربی چشم پوشید. ممکنه بیشعور تجاری در رشته خودشون استاد باشن اتفاقاً بیشعور در ورزش هاگ تیمی هم خوب بازی میکنند و همیشه بازیکن ثابت هستند. برای تاجرها و کاسب هاگ عادی و سالم رقابت در حد محرک مفیده اما در نظر بیشعور تجاری رقابت معادله با جنگ و خونریزی یه طورایی رنبو محسوب میشن و اسم شبشون بازم بیشتر است. در هر کاری که مشغول به اونن همه چیزو برای خودشون میخوان و برای این هدف بیرحمانه کار میکنن با این حال هرگز از دستاوردهای خودشون استفاده نمیکنن و از حاصل دسترنج خودشون لذت نمیبرن چون به خوبی میدونن که اگر لحظه ای استراحت کنن بیشورهای دیگه موی دماغشون میشن و کارشون را از چنگشون در میارن اونا نه تنها میخوان برنده باشن و در قله ها بیستن بلکه تا زمانی که رقباشون ته دره کاملا له شدن لحظه ای از پان نمیشینن. از این رو به نظر میرسه که آدمهای سالم و عاقل که نیاز به قدرت رو در مدیریت و اارج گذاشتن به اون درک کردن از اون با درایت استفاده میکنن اما؟ بیشعورهاگ تجاری از قدرت فقط برای خودشیفتگی و خودرعی بیشتر استفاده میکنند. این افراد گمان میکنند که تنها کارکرد شرکت یا مؤسسشون اینه که قدرت اونا را تأمین کنه خودخواهی هر بیشعوری بسیار زیاده اما خودخواهی بیشعورهاگ تجاری به اندازه یک کشتی اقیانوس پیماست و برای تأمین خواستهاشون به همون اندازه به خدم و حشم نیاز دارن این گونه بیشعور ها بیش از هر چیز از قدرتشون برای این استفاده میکنند تا به همه بفهمونن رئیس کیه. کاری که مستلزم نابود کردن افراد سرکش، اجیر کردن هواداران وظیفه شناس، در افتادن با ساگر رئیسها و تحت فشار گذاشتن زیر دستان خودشونه. بیشعور تجاری با کارکنان و کارمندانش مانند برده های آفریقایی در کشتی پارویی رفتار میکنه. و برای مشتریانش حتی از اینم کمتر ارزش قائله انگار که خاری در چشمش باشن و شعار واقعیش هموار اینه حق هیچ وقت با مشتری نیست مگر اینکه مشتری خود من باشم تاجر شرافتمند شفاف کار میکنه و چیز زیادی برای پنهان کردن نداره اما بیشور تجاری حتی در خوابم نمیذاره کسی سر از کارش در بیاره. به نظر او، تجارت یک بازی پوکر بزرگه و از این رو تمام حرکات رو در پس ابری از دروغ و تقلب انجام میده. شبیه به اون مواقعی که یه دسته نظامی پیش از هر کاری ابتدا نارنجکی دودزا فجر میکنه تا در پس دود قلیزه اون، حرکتش از دید دشمن استتار بشه. کتاب مقدس این نوع بیشعورها، کتابی به نام هنر دزدی از دونالد کرامپ که مینویسه راستی و درستی محمل و بیمعنی است. همیشه مفیدترین راهکار در تجارت مدیریت دستکاری اعداد و ارقام است. چرا باید برای به دست آوردن چیزی به سختی و با صداقت کار کرد وقتی می‌توان آن را به راحتی دزدید؟ چاره‌ایم نیست. وقتی یه نفر با کمبود لیاقت و توانایی اصرار داشته باشه که در جلسات مذاکرات و محاسبات به هر نحوی کارش رو پیش ببره باید جت کمبوداشو با حق بازی، حرافی و بلوف زدن جبران کنه. بیشعورهای گندگو از همینجا پیدا میشن. اوج هنرنمایی گندگوها وقتیه که سر نخی کلام از دستشون رفته باشه و ندونن درباره چی دارن حرف میزنن. اونا میدونن که در بیشتر محیط های کاری جست نقش اساسی رو داره و بنابراین به گونه ژست میگیرن که انگار همه چیزو میدونن. این بیشور را خودشون رو در برانگیختن دیگران یعنی چرندگویی، خلاقیت یعنی دزدیدن ایده های دیگران تعامل یعنی ارعاب دیگران و مدیریت یعنی سرپوش گذاشتن بر گند کاری هاشون خبره نشون میدن. البته اونا نون رسون هم هستن منتها نبرای زیردستان یا همکارانشون بلکه طرز تفکرشون مبنی بر رسیدن به قله ها گ و موفقیت بدون استعداد و مهارت و زحمت باعث رونق گرفتن تجارتی شده که سالانه بیش از 400 میلیون دلار به جیب کسانی که دستن در کار نوشتن کتابها، ها ارائه سمینار و پر کردن نوار در این زمینه سرازیل میکنه های نوع بیشعور هاگ تجاری، بیشعور هاگ امبی ای مخفف عبارت خبره در بیشعور بودن، یا مستر آف بینگ از اصحال. اینا افرادی با تیوری های عریض و طویل که عقلشون پار برمیداره. آدمایی با مدارک دهن پرکن از موسسات علمی جهانی که برای هر مسئلهی پاسخی و نه راه حلی در آستین دارن. بیشعور های امبی ای ید طولایی در برگزاری جلسات طولانی و خسته کننده ای دارند که در اونا آمار و ارقام از آدمها محصولات و فروشگاه ها اهمیت بیشتری داره. اونا به تمام مسائل و مشکلات به دید وضعیت های مفروضی نگاه می که با تئوریهای های انتظائی قابل حلن. البته حجم مبادلات و جابجایی در تجارت بالاست و هر سال تعدادی از این بیشعورهای تجاریم مشمول جابجایی شده و از صحنه حذف میشن. هرچند معمولاً به طور کامل حذف و نابود نمیشند و چندی بعد با هیئاتی تازه دوباره سر پیدا میشن در بیشتر موارد نام تازه این مهرها سوخته مشابه